ایستاده بود روبروی سبلان و نگاهش را دوخته بود به قله و یالهای بلند و پوشیده از برفان که زیر تابش خورشید مثل شیشه می درخشید. وقتی پایش را از مشکین شهر بیرون گذاشت و راه باللیجا را در پیش گرفت، باد هم وزیدن گرفته بود. تند و پرکوب سیلابی از برف در کوه پای جاری کرده بود. پنجه میکشید کشید، می رفت و می برد. ایستاد و کلاهش را کشید روی گوشهایش و نگاهش را دوخت به کو. تکی ابر گیر کرده بود به قله و کنده نمیشد. کم کم شبیه گرگ شد. بزرگ و ترسنا که میخواست از قله کنده شود هجوم بیاورد به طرف او. دشت خالی بود. تنها طوفان برف بود و تک و توک تک درختان لختی که سر در گریبان بودند. تیره پشتش لرزید. نفهمید از سرما بود یا از ترس میان رفتن و برگشتن دو دل ماند بعد از ظهر توی گاراژ از اتوبوس پیاده شد به هوای دیدن مشم و آمده بود که در روستای باللی جا نزدیک مشکین شهر معلم بود مشم و گفته بود پای پیاده یه راهه حالا یکم بالا یکم پایین هوا صاف و آفتابی بود تصمیم گرفت برود ولی راه را بلد نبود بیرون گاراژ ایستاد و به دروبرش نگاه کرد. شهر خلوت بود. مردم انگار به خانه پناه برده بودند یا او گمان میکرد که پناه بردهاند. بقالی کوچکی چسبیده بود به دیوار گاراژ. توی آن تاریک بود. خوب که نگاه کرد. صاحبش را دید که بالا پوشی بلند پوشیده و کلاه دست بافی بر سر گذاشته و پشت پیشخان ایستاده و چشم به خیابان دوخته. به طرف مغازه رفت. کفان یک پله پایین تر از پیاده رو بود داخل شد و سلام داد مغازه با ملایمت نگاهش کرد و جواب داد سلام پسرم، خوش اومدی، بفرمایی ده مزاحم شدم، ارزی داشتم میخواستم بدونم شما این طرف دهی به اسم باللیجا میشناسین؟ بله، میشناسم من میخوام برم اونجا، مینیبوسی سواری چیزی داره؟ قرضدار کلاهش را برداشت. سرش را از ته تراشیده بود اما محاسنش بلند بود و تازه آنا گذاشته بود. دستهایش را هم. الان چند روز راه اونجا بسته است. مگر اینکه تراکتور اسمایل به فکر رفت. پیاده چی میشه رفت؟ پیاده؟ خودشون هم اگه بخوام پیاده برن یا بیان تنها راه نمیافتن؟ چند نفر چند نفر این کارو میکنن؟ یعنی خیلی برف اومده؟ برف که خیلی اومده بعضی جاها تا زانوی آدم بالا میاد اما بدبختی که فقط برف نیست پس چیه؟ مغازدار کلاهش را گذاشت روی سرش آن را با سلیقه کنار گوشهایش میزان کرد گرگ گرگ آدم خار آدم خاره؟ مگه بقیه گرگ آدم نمیخورن؟ چرا میخورن؟ اما مگه چطور بشه به آدم حمله بکنن؟ اونم چند تایی نه تنهایی. اما این لامستب نه با گاف کار داره نه با گوتسوند. فقط میاد طرف آدم. فقط آدم؟ آره به جون عزیزت. فقط آدم؟ اونم بعضی آدم ها. بیشتر هم جوون. تو دهات اطراف چند نفر خورده. خب پس ارتش و جاندرمری چیکارن؟ کشتن یه گور که براشون کاری نداره. مغازهدار دستی به محاسن هنا کشید و آهسته تر گفت آره کاری که نداره اما اجازه ندارم ببین این گرگ آمریکایی آوردن تو شرکت کشت و صنعت مقان برای چی؟ برای عرض کنم حضورتون که به قول معروف اصلاح نژاد گرگا حالا شده بلای جون مردم اسماعیل لبهایش را روی هم فشرد با دیدن کلوچه های خوش رنگ احساس گرسنگی کرد. اتوبوس پای پیچه حیران ایستاده بود برای نماز و نهار. نماز را توی امامزاده خاند و سر و ته نهار را با چند سیخ کباب و یکی دو تا لواش هم آورده بود. چند ساعت از آن موقع گذشته بود. زحمت یکی از اون کلوچه‌هاتون بدین. مغازدار با حرکاتی آرام و با سلیقه ها را برداشت و گذاشت کنار ترازو. پرسید. خالی میخوری یا با نوشابه؟ بده، یه دونه باز کن در نوشابه را نرم باز کرد و کمر شیشه را داد دست اسماعیل نوش جون حواستش بیشتر پیش حرف های دار بود به راه فکر میکرد خورد پول کلوچه و نوشابه را حساب کرد و خواست بیرون برود دار گفت از من میشنوی تنها نرو همراه پیدا میکنم شایدم با تراکتور رفتم خداحافظی کرد از مغازه بیرون رفت هرچه ایستاد کسی نیامد زمین زیر سفره برف گم بود تنها از ردیف چنارهای لاغر و لخت میشد فهمید که راه پایان درختان است داشت دیر میشد. میان ماندن و رفتن مردد بود یک لحظه دل به رفتن داد و پای در راه گذاشت محکم و مسمم طوری که صدای شکستن برفهای یخزده زیر پایش بلند شد چند سگ لاغر با کنجکاوی از پشت پرچین ها نگاهش کردند. پوزشان را بالا گرفته بودند و به جای پارس زوزه میکشیدند. بخار دهانشان از دور دیده میشد. اول ترسید حمله کنند، اما سگها با بیحالی زوزه میکشیدند. از آنها دور شد. هیچ کدام از جا نجومید و به طرفش هجوم نبرد. فاصله گرفت. به مزارع اطراف شهر رسید. با آنکه چند روز بیشتر به تحویل سال نمانده بود اما برف سنگینی روی زمین نشسته بود برف تازه روی برف کهنه، برف روی برف از شهر دور شد خورشید لغزیده بود به سمت شانه چپ سبلن سعی می کرد راه را گم نکند سنگچین دو طرف را نشانه گرفته بود و می رفت. تازه از مزاره فاصله گرفته بود که صدای قارغار کلاخ ها را شنید ابتدا تک و سپس به صورت بود. از پشت سر می آمدند. از سوی مغان سر و صدایشان سکوت دشت را شکسته بود وقتی بالای سرش رسیدند آسمان سیاه شده بود دسته عظیم و بیپایانی بود که انگار تمامی نداشت فوج فوج از پس هم می و گاهی نیز تعداد زیادی از بقیه جدا میشدند و در نقطه به صورت گرداب و کلاف و پیچیده در هم فرو میرفتند و باز میشدند و دوباره میشدند. راه را زیر پایش معطل گذاشته بود با شگفتی نگاهش را دوخته بود به صدها کلاغ سیاهی که ناگهان سر و کله‌شان پیدا شده بود کم کم در افق ناپدید شدند صدایشان هم دیگر شنیده نشد او ماند دشت خالی سفید سرد آن تک ابر همچنان گیر کرده بود به قله و از آن جدا نمیشد. انگار همانجا یخ زده بود هیولاوار خورشید آرام می لغزید به سمت شانه غربی سبلان. دشت بنفش شد. حتی بوته های خوشگیده آدم که همچنان بر جایی مانده بودند. این نشانه غروب آفتاب بود. باید تون تر میرفت. افتاده بود روی برف ها و همراه او کشیده می شد و میآمد. هر چند وقت یک بار بر می گشت و به پشت سرش نگاه می کرد. نشانی از خانه ها و باخ های مشکین شهر هم نبود. تنها جای پایش روی برف باقی بود. قریب و نابلد. تهران دیگر جای امنی برایش نبود. شانس آورد که در امامزاده یه راه آهن تهران تبریز گیر مأمورها نیفتاد. و باز هم خیلی خوش شانس بود که وقتی از بام بقعه افتاد توی قبر متروک نمرد و همونجا میان گلولای دفن نشد. چند لحظه بعد خودش را کشید پای دیوار حیات امامزاده و از راهها بیرون خزید و دست معمورها بهش نرسید گریخت خودش را رساند به بانک شعبه خیابان سعادت آنقدر منتظر ماند تا یوسفی رئیس بانک رسید همین که از ماشین پیاده شد خود را به نشان داد. یوسفی به جا نیاورد با حیرت نگاهش کرد لابد گمان کرده بود که یکی از معتادهای الاف پشت خط راهن است اما وقتی شناختش دهانش از تعجب باز ماند و چند لحظه بعد به زبان آمد این چه اوضاعیه بچه؟ چرا خودتو لجمال کردی؟ آقا ناسلامتی روزی کارمند همین بانک بودی؟ اسمایل با عجله گفت داستانش مفصله الان نمیتونم تعریف کنم خب حالا میخوای چی کار کنی؟ اونم نمیتونم بگم ا پس چی میتونی بگی بچه جون؟ فقط میتونم بگم پول میخوام همین قرض حالا چقدر میخوای؟ هرچی شد یوسفی به اطراف نگاه کرد و گفت خیلی خوب. من که می میدونم دستگل به نمی نمیخوای بگی. حالا برو بشین تو ماشین تا برم از حسابم پول بردارم بیارم. یوسفی دور شد. او هم با عجله پرید توی ماشین و در را بست خودش را مچاله کرد تا کسی نبیندش. اگر پول بانک را روان دانست و اگر کار در آنجا را با به میلش میدید، به خاطر یوسفی هم که شده میماند و استفاه نمیداد. از بس این مرد مهربان بود و در حق او پدری میکرد اما تصمیمش را گرفته بود. راه برگشتی برایش نمونده بود. یوسفی برگشت با پاکتی که معلوم بود تویش پول است، اما نمیشد فهمید چقدر. بیا بچه جون، همین تو حسابم بود. نمیدونم چجور تشکر کنم، برمیگردونم. نمیخوادم از زبون برزی. کاش منم مثل تو ارزشو داشتم. اشک توی چشمهای اسمایل جمع شد، نتوانست حرف بزند، فقط نگاهش کرد. خیلی خوب، حالا برو به سر و برس. اگه هم تونستی و عشقت کشید بی خبرم نذار حتما پاکت را گرفت و گذاشت جیب بغلش و در ماشین را باز کرد و پیاده شد و با عجله رفت توی کوچه باریکی که اگر کسی از روبرو می آمد مجبور بود یک ولی رد بشود میخواست برای خودش لباس گرم و ساک و کفش بخرد از آنجا رفت حمام. غروب بود که رسید به ترمینال غرب. از ترس داخل نشد همان بیرون توی خیابان ایستاد تا ماشین مشکین شهر آمد سوار شد خاطره دیدارش با مشهدی ام و اغلی در تبریز برایش خوشایند و آرام بخش بود او را انسانی وارسته و سرد و گرم چشیده دیده بود کسی که میتوانست برایش راهنمای خوبی باشد برای همین هم تصمیم گرفت به جای رفتن به بنفشه در رو و پیش مادر بزرگ یک یکسره برود باللیجا و و اغلی را ببیند حالا در راه باللیجا بود روستایی چسبیده به دامن سبلان و چشم دوخته به ها و یالهای بلند آن رفته رفته درختها و بامها و پشته های دیده میشد از اینکه راه را درست آمده بود خوشحال شد با خیال راحت پیش میرفت میدانست که راه به آبادی ختم میشود نه به ها و دربندهای مخوف سبلان با این حال هنوز دلش همسفری میخواست تا با هم حرف بزنند و آنقدر از بسته شدن راه در زنستان ها، از برف های سنگین، از سرما و یخ زدن آدمها و تلف شدن احشام و خیلی چیزهای دیگر بگویند و بشنوند که متوجه نشوند کی رسیدند و راهشان کوتاه شود. برگشت و به عقب نگاه کرد. باد پنجه میکشید و برف را تا مسافتی با خود می برد. کسی نبود، کسی نمی آمد. خواست برگردد و به راهش ادامه بدهد، اما انگار چیزی دید. کسی آن میان بود میپیچید و مچاله می آمد و گاهی هم در امواج سفید برف گم می شد گویه که نبود از اول به هر حال منتظر ماند تا اگر آن سیاهی کسی بود بیاید و به او برسد و با هم همراه و هم سفر شوند تا باقی راه را تنها تی نکند آن سیاهی هر که بود و هر که نبود داشت از پرده خوبار برف بیرون می آمد کمی که ایستاد دید شلاق کش میپیچد به او نفسش میرود و سخت برمیگردد برگشت به سوی بالای جا نمی توانست یخجا بماند باید راه میرفت. رفت رفت آهسته و کند تا آن مسافر هم خودش را برساند حالا کمی گامهایش را با سلیقه برمیداشت و میگذاشت برای همین هم کمتر توی برف فرو میرفت. تا به حال توی عمرش این همه برف ندیده بود از نوک کوه تا عمق باقها یک دست سفید بود. در تهران هم برف دیده بود. از روی پشت بامها با پارو یا استانبولی میریختند و وسط کوچه و تلی از برف درست می کردند که از این سر کوچه تا آن سر کوچه کشیده می شود. و تا آب بشود شود هفته ها طول می کشید و بسات سرسره بازی آنها رو به راه می شد. اما این برف یادان سیاهی افتاد. دوباره برگشت و نگاه کرد. او منتظر کسی بود اما کسی نبود حیران بود سگی با پوزه‌ای تیز و دراز به قاهده یک گوساله که مثل شتر شلنگانداز میآمد سری خودش را رسانده بود با گامهای بلند و چالاک نزدیک میشد. هم صدای پایش شنیده میشد، هم هن و هن که بخار آن از دهانش بیرون می‌آمد حالا چشمهایش هم دیده میشد. کشیده و کهربایی گاهی هم به رنگ شعله با این حال سرد، یخ، منجمد یا چیزی شبیه به همینها سردش شده از درون لرزید گرگ، گرگ آدم خار صدای مغازدار پیچی توی گوشش مثل بوران سرد که گاهی میخواست پرده گوشش را پاره کند و راه نفسش را بگیرد لابد خودش بود تا به حال گرگ درست و حسابی ندیده بود یکی دو بار که رفته بود باقه توی قفس گرگ ها چند سگی لاغر و عصبانی را دیده بود که راه می رفتند و به کسی هم نگاه نمی کردند. اما این یکی فرق می کرد ترسناک بود هر دو ایستادند و به هم چشم دوختند گورگاهی دمش را تکان می و گوشهایش را تابتا می کرد هنوز نفس نفس میزد هنوز بخار سفیدی از دهان و بینیش بیرون می آمد و در هوا گم می شد و هنوز نگاه می کرد. سرد و سنگین شنیده بود که از سگ جماعت نباید بترسد نباید از جلوشان فرار کنند. در آن صورت جری میشوند و دنبال میکنند ایستاد و چشم تو چشم شد چند دقیقه به همان حال ماندند گاهی گرگ سرش را برمیگرداند و به این سو آنسو نگاه میکرد و بو میکشید احساس کرد ترسیده یا دچار تردید شده آهسته نیمتنهاش را درآورد و دور دستش پیچید چیز خوبی شد می بدهد دهان گرگ بیان که دندانهایش به او آسیب برساند بعد بیان که جلو را نگاه کند به راهش ادامه داد گذشته زمان و تاریخی شب به نفع او نبود از گرگ فاصله گرفت وقتی برگشت و به جلو نگاه کرد خانه های روستایی را دید که عشقی کمجان خورشید هنوز سر دیوارها و روی بامهای آن دیده میشد. گامهایش را بلند برداشت اما نگاهش همچنان به پشت سرش بود. گرگ دو دستش را ستون سینه کرده بود و روی دو پا نشسته بود و نگاهش میکرد. باز هم تون تر رفت. مدتی بعد گرگ بلند شد. خودش را تکان و به راه افتاد. دنبالش می ترسید. صدای تپش قلبش را شنید. همانطور که پاهایش تا ساخت روی برفها فرو می رفت و در میامد به راهش ادامه داد. کنار جاده درخچه آلوچه ای را دید. که از بس برف روی شاخه های لختش نشسته بود از دور دیده نمیشد. گرگ فاصله را کم کرده بود به طرف درخت آلوچه رفت. یکی از شاخه هایش را انتخاب کرد اش را زمین گذاشت پرید شاخه را دو دستی گرفت و محکم خماند. شاخه کمانه کرد، بث برداشت، ایستادگی کرد و عاقبت با صدای بلندی می شکست. چیزی مثل صدای شلی که گلوله پیچید توی صحرا یا او اینطور فکر می کرد. فکری خوشایند و دلگرم کننده شاخه شکسته توی دستش بود با نازکی از برف و چند شاخه کوچک که حالا دیگر مزاحم بودند آنها را هم شکست و دور انداخت و شاخه را چند بار توی هوا تکاند. باز هم نیمتنهش را دور دستش پیچید و راه افتاد گرد با کنج کاوی نگاهش میکرد شاخه درخت برایش قوت قلب شده بود مثل رفیق راه با اطمینان بیشتری قدم بر میاشت و فاصلهش با خانه های ده کمتر میشد. پیش خود فکر می کرد احالی ده حتما او را می بینند و اگر بخواهد فریاد بزند صدایش را میشند. در همین فکر بود که احساس کرد عقاب بزرگی از پشت روی شانهایش نشست. مثل فنر از جا جهید و کنار کشید. گرگ از چند قدمیش در جای خالی فرود آمد. تعادلش به هم خورده بود. کسی انگار او را به جلو هلاد و گفت، نترس. پیش برو. رفت، اما نتوانست بزند گرد برگشت. حالا هر دو رخ به رخ و چشم تو چشم ایستاده بودند. خورشید لغزیده بود پشت کوه. باد از نفس افتاده بود. صحرا پر از سرما و سکوت بود. سنگین و سنگین. آن دو همچنان مانده بودند، روبروی هم، بیان که حتی پلک بزنند. میدانست که نباید یک لحظه چشم از گرگ بردارد. باید خیره بماند خیره و خشمگین و مترسده هجوم این نگاه بیامان و گستاخ گرگ را گیج کرده بود گاهی خوره میکشید. گاهی گوشهایش را به اطراف تکان میداد اما بیشتر ساکت بود هیچکدام کدام پا عقب نمی گذاشت. سرخی خورشید از اطراف قل پرید هوا خاک شد و میش شد اما اسماعیل و گرگ گویا به زمین دوخته شده بودند چندی بعد صدایی از سمت روستا برخاست و سکوت را شکست. از بلندگوی مسجدی در باللیجا آن مغرب پخش میشد و صدایش در دهشت پیچید گرگ نگاهش را به آن طرف دوخت. چند بار سرش را به این سو آن سو چرخاند و بعد آهسته عقب رفت. سپس برگشت و راه آمده را در پیش گرفت. اسماعیل آنقدر ایستاد تا گرگ از آنجا دور شد. نفس عمیقی کشید انگار در تمام مدت نفسش بند آمده بود و بالا نمی آمد صدای از آن همچنان می آمد. بعد از آن صدای پارس سکا بلند شد گویا بوی گرگ را احساس کرده بودند وقتی خواست به سمت روستا راه بیفتد حس کرد پاهایش یخ زد و به زمین چسبیدند به زحمت حرکت کرد کرسوی چند چراغ از خانه های دیده شد گامهایش را بلندتر برداشت به نظر بار سنگینی را از روی دوشش به زمین گذاشته بود. به هر حال احساس می کرد خسته است. دلش می خواست هرچه زودتر خانه مشم و را پیدا کند و او را ببیند. در حضورش به آرامش برسد. اندام ورزیده، چهره بشاش و نگاه محبت آمیز و لحن مهربان همه ی آن چیزهایی بود که از مشم و به یاد داشت و خواهنشان بود. می توانست در او ساعت ها بنشیند، چای بخورد، ترس گرگ و سوز سرما را فراموش کند، با این حس و حال به روستا رسید. چند سگ زوزه کشیدند سکهای دیگر هم به آنها اضافه شدند از کوچه ها بیرون آمدند و به طرف او حمله کردند شاخه درخت آلوچه وحشی همچنان در دستش بود پشت به دیوار ایساد آن را دو دستی گرفت اما سگها به سرعت از کنارش گذشتند و به شبه گور که در حال پیوستن به تاریکی شب بود حجوم بردند کمی بعد آنها هم دیده نشدند تنها صدای پارس کردنشان از دور دست ها شنیده میشد. کوچه های ده تنگ و تاریک بود. حتی تاریک تر از دهشت. خانه های بالا سر به کوه تکه داده بودند. آدمها وار از کنارش میگذشتند و میرفتند و انگار او را نمیدیدند. و تنها به زیر پایشان نگاه میکردند تا نلغزند توی جوی چاله. مشم و اقلی گفته بود مدرسه بالا دست ده است، چسبیده به کوه. از پیرمردی که سازنان میآمد، نشانی مدرسه را پرسید. پیرمرد ایستاد. وقتی کمرش را راست کرد به نظر قدش دو برابر شد. شب مشکی سرش بود. صورت لاغر و ریش سفید کم پشتی داشت. اسایش را به سمت کوه گرفت و گفت: مدرسه از همین تنگه که نشونت می‌دم میری گوش می‌کنی؟ بله، گوشم با شماست. خب، این طرف و اون طرف نپیچ. راست برو. میرسی به کجا؟ مدرسه ای زنده باد فقط حواست باشه راست بری راه راست پیرمرد دوباره کوتاه شد و اسا رفت مسیر سربالا و سنگلاخی بود آبی که از حیاتها بیرون میآمد به صورت جویی پر گلولای به سمت پایین جاری میشد